نظریه های توسعه روشن است که در این نظریه ها فرهنگ و جامعه بر اثر توسعه قابل تغییر و بهبود است. یک وجه مشخصه در قالب این نظریات آن است که بیش از تغییر یک جامعه از طریق بسیج سیاسی و نوسازی دولت به تقویت و توسعه زیرساخت های توسعه صنعتی، اقتصادی، شهری، رسانه‌ای، آموزشی و ارتباطی تاکید دارند. هر نوع تغییر در دولت چه به صورت اصلاحات و چه به طریق اولا از راه های انقلابی در صورتی که فرایندهای توسعه در زیر ساخت‌های اقتصادی و شهری و سنفی و صنعتی و ارتباطی و اجتماعی هنوز تعیین نشده باشند، اغلب بینتیجه میماند و حتی وضع را بدتر نیز می کند به عبارت دیگر قائلان به نظریه توسعه دولت را پوسته ای می دانند که اگر مناسبات اقتصادی و آموزشی و ارتباطی توسعه پیدا بکند جامعه خیلی راحت می تواند این پوسته دولت را بیاندازد و دولتی مناسب با درجه توسعه یافتگی به وجود بیاورد شواهدی نشان می دهد که تغییرات سطحی در لایه سیاسی نمی تواند واقعیت هستی اجتماعی یک ملت را و آنتولوژی زندگی مردم را و موقعیت مردم را به این آسانی و حداقل در کوتاه مدت تغییر بدهد برای مثال اگر شرایط تاریخی سبب شده است نحوه زندگی مردم در یک جامعه زیستن در دنیایی با ارزشهای متعارضه است و های متقاطع معنایی و ارزشی به علل تاریخی و ای با هم تنش دارند در چنین جامعه ای به این راحتی نمیتوان قواعد ظاهری دموکراسی یعنی هر کس یک رأی را بدون توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی عملی کرد و همه ی مشکلات را به آسانی حل کرد. هر جامعه‌ای تاریخ خود را دارد. زندگی سفری است که هر کس راه خود را میرود. چند سال پیش تالیس کتابی با عنوان دموکراسی و تعارض اخلاقی منتشر کرد که دشواری‌های دموکراسی را در صورت باقی ماندن ساختهای قدیمی بحث می‌کند. وقتی آنتولوژی سیاست هنوز حالت عشیره‌ای دارد و گروه‌های قومی و فرقه و زبانی در همان ساخت سنتی هستند و هر کدام در دنیای خود حقایقی را باور دارند، نمی‌توان های عمیق آنها را با یک حساب ساده عددی و شمارش آرا در قالب یک انتخابات ظاهری رفع و رجوع کرد یعنی صندوق رعی و شمارش آرا الزاماً نمیتواند برای چنین ای فصل الختام رضایت بخش پایداری باشد واقعیت آنتولوژی سیاست در چنین جامعه‌ای نمیتواند با این منطق دموکراسی که رئیس عشیره و هر یک از رآیای او به طور مساوی فقط یک رأی دارند به راحتی پاک بشود هستی واقعی جامعه جان سخت است و دموکراسی را با خشونت پس میزند یا آن را در خود استحاله می کند و دولتی را شکل می دهد که نه دموکراسی است و نه یک اقتدارگرایی کارآمد است. پس راه این است که دموکراسی از رهگذر توسعه و پا به پای آن پیجوی بشود. آلمان و وربا چند دهه پیش بر مبنای همین نظریه توسعه است که پنج کشور انگلیس، آمریکا، ایتالیا، آلمان و مکزیک را مقایسه کردند. طبق بررسی آنها میزان توسعه یافتگی در زیر اقتصادی و اجتماعی و ارتباطی و آموزشی یک جامعه است که مشخص می کند در فرهنگ یک جامعه چه نوع روحیاتی وجود داشته باشد؟ روحیات پیروی سرپیچی یا روحیات مشارکت قائدمند. نظریه توسعه در ایران نیز قائلانی دارد و مشکل شخصیت و منش در ایران را قلبه نظام اشیرگی توسعه نیافته میدانند که در او قاعد گریزی، واقعیت گریزی، احساسات مفرت، رابط گرایی، فرهنگ رفاقتی، ستیز جویی تعصب و خشونت دیده می شود و تنها راه علاج آن توسعه یافتگی است ش سنخ شناسی های فرهنگی. الف تیپولوژی گیرت هافستید از جمله نظریه پردازان است که فعالیت‌های خود را درباره تحلیل اطلاعات مربوط به تفاوت‌های فرهنگی در سطح بین‌المللی از اواخر دهه شست و اوایل دهه هفتاد سده بیستم میلادی آغاز کرد. بر اساس اطلاعاتی که از ست هزار نفر در چهل کشور جهان گردآوری و تحلیل کرد و نیز مطالعات اضافی بعدی در زمینه کارکنان و مدیران چینی. هافستید پنج شاخص برای تفاوتهای فرهنگی تعریف کرد، بعدها شاخص ششومی نیز افسوده شد. یک، شاخص فاصله قدرت PDI آی. این شاخص درباره زمینه‌های فرهنگی مربوط به توزیع قدرت و رفاه در جوامه است، بالا بودن این شاخص در یک جامعه نشان می‌دهد که زمینه‌های فرهنگی مساعدی در آن جامعه برای نابرابری و عدم توازن قدرت و رفاه وجود دارد و در زمینه فرهنگی آن جامعه روح تحرک و جابجایی از طبقه ای پایین به طبقه بالا اندک است گروه‌هایی که از ثروت و قدرت اندکی برخوردارند تفاوت وضعیت خود با بالادستها را به عنوان واقعیت می‌پذیرند و از آنها پیروی هم می‌کنند اما شاخص فاصله قدرت پایین نشان می دهد که در یک جامعه میل به مشارکت و تحرک طبقاتی بیشتر است. پایین بودن شاخص در یک جامعه حکایت از آن دارد که گردش و توازن قدرت در فرهنگ آن جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. 2. شاخص فردگرائی ای دی آی. این شاخص متمرکز بر مراتب فردگرایی یا جمعگرایی در فرهنگ جوامع است. بالا بودن این شاخص در یک جامعه نشان دهنده آن است که فردیت و حقوق و آزادی های فردی در فرهنگ آن جامعه اهمیت زیادی دارد و برعکس پایین بودن شاخص در یک جامعه دلالت می‌کند به این که فرهنگ آن جامعه مایل به جمعگرایی است. گستردگی ابعاد خانواده و خیشاوندی و مسئولیت در قبال جمع و جماعت از دیگر ویژگی فرهنگ جمعگر است. در فرهنگ با شاخص فردگرای بالا هویت فردی اهمیت دارد و بیشتر تابع انتخاب های فردی است. 3. شاخص فرهنگ مردانگی M.A.S این شاخص نشان دهنده نقش و قدرت متمایز مردان و زمینه‌های فرهنگی کنترل توسط آنان است. بالا بودن شاخص در یک جامعه حکایت از آن دارد که زمینه‌های نابرابری جنسیتی به نفع مردان در فرهنگ آن جامعه زیاد است و برعکس، پایین بودن شاخص در یک جامعه نشان می‌دهد که فرهنگ آن جامعه مستعد تبعیض جنسیتی نیست. و مرد طبعی و زن طبعی دو نیمه فرهنگ بشری هستند همچنین از نظر هافستید بالا بودن شاخص مردانگی ارتباط مستقیمی با اهمیت انصر رقابت، موفقیت و حس برتری در یک فرهنگ دارد برعکس پایین بودن آن می تواند نشانه ای از اهمیت ارتباطات گرم اجتماعی، تیمارداری و کیفیت زندگی در یک فرهنگ تلقی بشود چهار. شاخص اجتناب از نااطمینانی و عدم قطعیت (UAI). این شاخص سطح تسامح را در یک فرهنگ نسبت به عدم قطعیت و ابهام نشان می‌دهد. بالا بودن شاخص در یک جامعه نشان می‌دهد که در فرهنگ آن جامعه مقررات و کنترل و ساختارها اهمیت دارد. و برعکس پایین بودن شاخص در یک جامعه حکایت از آن دارد که نگرانی فرهنگی نسبت به عدم قطعیت و ابهام کمتر است، زمینه‌های تنوع و تکثرگرایی فرهنگی بیشتر است، برای سیاست‌ها و مقررات شدید و کنترل سفت و سخت احساس ضرورت نمی‌شود و آمادگی برای تغییرات و مخاطره‌پذیری زیاد است. 5 شاخص جهدگیری دراز مدت این شاخص هرچه بالا باشد نشان میدهد در فرهنگ ظرفیت کار کردن برای آینده پسنداز کردن و سرفجویی هست افراد اصرار ندارند که نتیجه کار خود را سریع و آنی و زود به دست بیاورند و صبر می کنند تا انباشتی و توسعهی روی بدهد در چنین فرهنگی ممکن است اخلاقیات کار با امید به پاداش‌های درازمدت آتی نیرومند باشد و طی مسیر شغلی لوازم زیادی داشته باشد. هافستید این را پویایی کنفوسیوسی نام نهاد. برعکس پایین بودن شاخص در یک جامعه دلالت می‌کند به اینکه در فرهنگ آن جامعه نتایج سریع خواسته می‌شود. 6. شاخص سختگیری در مقابل سهل گیری در فرهنگی که شاخص سختگیری بالاست، انتخابهای فردی محدود است و فرهنگ اصرار دارد که افراد مطابق هنجارهای رسمی عمل بکنند. برعکس، در فرهنگ با شاخص سختگیری پایین انتظار می زمینه‌های فرهنگی مناسبی برای آزادی انتخاب در سبک زندگی و شادی و لذت وجود داشته باشد. سنخ شناسی هافستید نیازمند نقد است. این نوسرخ شناسی فرهنگ ملی علاوه بر اینکه تقلیل گرایان است، مشکل دیگری در اندازهگیری و تعمیم دارد. چون اطلاعات از طریق مطالعه فرهنگ سازمانی شرکتها و سازمانها به دست آمده است و چندان نمیتواند کل فرهنگ شهروندان را بازنمایی بکند. ولی به هر حال راهی است که پیموده شده است و میتواند در کنار تحقیقات کیفیتر مورد استناد و بررسی قرار بگیرد. نویسنده با مراجعه به سایت هافستید برای نمونه شاخصهای ایران را با دو کشور مسلمان ترکیه و مالزی مقایسه می کند. ملاحظه می شود که سه شاخص فاصله قدرت، مردانگی و سختگیری در ایران کمتر از دو کشور همگن است. به این معنا می شود گفت در فرهنگ و خلقیات ایرانی حسب قرائن ضعیفی که شاخص هافستید به دست می دهد میل به مشارکت، تحرک اجتماعی، نیز نگاه دو جنسیتی، روح تیمارداری، ارتباطات گرم اجتماعی بیش از دو کشور مالزی و ترکیه است و به مراتب کمتر از آن دو کشور در فرهنگ ایرانی روحیه سختگیری وجود دارد. شاخص اجتناب از عدم اطمینان در فرهنگ ایرانی هرچند از مالزی بالاتر است و در نتیجه باید گفت کمتر از فرهنگ مالزی در فرهنگ ما روح مخاطر جویی و ریسک پذیری دیده شده است. اما نسبت به ترکیه کمتر از مخاطر گریزانی. شاخص فردگرایی نیز در ایران بیش از هر دو کشور مسلمان دیگر است و این را شواهد غیر علمی نیز به راحتی تایید می کند. اما مشکل دارترین نشانگر فرهنگی ما در شاخص هافستید پایین بودن فاحش دراز مدت از دو کشور همکیش است در فرهنگ ما ظرفیت کار کردن برای آینده، پس انداز کردن و صرف کمتر از مالزی و ترکیه است گویا بسیاری از ایرانیان اصرار دارند که نتیجه کار خود را سریع و آنی و زود به دست بیاورند و صبر کنند تا انباشت و توسعه‌ای روی بدهد در فرهنگ ما متاسفانه اخلاقیات کار با امید به پاداشهای های درازمدت آتی ضعیف است و طی مسیر شغلی به آسانی صورت میگیرد به تعبیر هافستید پویایی کنفوسیوسی کم داریم. خیلی از ما نتایج سری می و برای همین است که گویا انباشت و توسعه در کشور ما ضعیف است. در همان مخذ برخی شاخص ایران با حد بالا و حد پایین شاخص جهانی نیز قابل مقایسه است. ملاحظه می شود که در سه شاخص میل به مشارکت، تحرک اجتماعی، آمادگی به تغییرات و فردگرایی ما نسبت به دو کشور نمونه به میانگین جهانی نزدیکتریم و به عبارت دیگر بر حسب سنجه های البته ضعیف و قابل نقد هافستید ما ایرانیان فرهنگ متوسط الحالی داریم. هرچند تحرک اجتماعی در فرهنگ ما خیلی کمتر از فرهنگ اتریش است، ریسک پذیری ما بسیار از سنگاپور پایینتر است، فردگرایی ما با فردگرایی آمریکایی فاصله بسیار دارد و بسیار کمتر از سوئد نگاه دو جنسیتی داریم. ب. مقایسه ای میان فرهنگی درباره اقوام ایرانی. در پژوهشی های فردی سقوم فارس کرد و ترکمن در استان خراسان شمالی در چارچوب سنخشناسی هافستید بر مبنای هر شش شاخص مقایسه شده است الف در سه شاخص مردانگی فاصله قدرت و سختگیری تفاوت معناداری میان سقوم دیده نشد ضمناً مردانگی در مردان بیشتر از زنان بود در این حال مقادیر هر سقوم نزدیک به نگاه دو جنسیتی و زنطبعی و تیمارداری و اهمیت کیفیت زندگی است. فاصله قدرت در هر سقوم بالاتر از میانگین است و شاید سلسله مراتب گرایی و تملق به فرادستان نتیجه این روحیه باشد که در این استان هم مثل بسیاری مناطق ایران به چشم میخورد. در شاخص سختگیری، سهلگیری، مقادیر هر سه قوم به سهلگیری نزدیکتر است تا سختگیری که نشاندهندهی روح تسامح ایرانی در این خطه است. ب. شاخص فردگرایی در هموطنان کرد خراسان شمالی به طرز معناداری کمتر از قوم فارس در آنجاست. است. کرد و ترکمن جمگراترند و با هم در این خصوص از فارس‌ها متمایز می شوند. این؟ آثار فرهنگ قبیله و اشره در آنهاست. پ شاخص پرهیز از عدم اطمینان در کرد و ترکمن به طرز معناداری بیش از فارس است. ضملا مقدار این شاخص در هر سوم خراسان شمالی بیش از حد متوسط دیده شد که نشان میدهد مردم حسب تجربه های زیست خود و هوش معیشتی، طالب امنیت و صباتند، و نسبت به تغییرات چندان خوشبین نیستند. زمنان این شاخص به مراتب در مردان بیشتر است و این قابل درک است چون آنها بیشتر با کسب و کار درگیرند و وضعیت اشتغال و سرمایه گذاری چندان مناسب ریسک پذیری نیست. این نیز گواه دیگری است که مشکل بیش از اینکه در خلقیات باشد در نهاد هاست. ت شاخص جهدگیری دراز مدت در هموطنان کرد و ترکمن بیشتر از فارس ها دیده شد. نشان می دهد که آنها شاید به خاطر سختی شرایط زیست خیش یاد گرفتند کار را پسنداز بکنند در تابستان برای زمستان خیش و در دوره جوانی به پیری بیندیشند. آموختند که تیکردن مراحل اجتماعی و اقتصادی مستلزم کوشش و صبوری و انتظار ایام است، و در میان آنها از نوکیسگی ها و بالا آمدن های سریع شهری در سایه رانت خبری نیست. پی تیپولوژی شوارتس شوارتز تفاوت های فرهنگی را در سه محور پیوستاری مقایسه کرده است. محور اول خودگردانی فردی، ادغام گرایی فردی. محور دوم میل به برابری، سلسله مراتب محور سوم، هم و هماهنگی برتری و و خودبیانگری. شوارتز در حقیقت با یک تقلیل گرایی روش شناختی به مدل سادهی برای فروکاستن انواع تفاوتها به این سپی وستار توسل می‌جوید. محور نخست این جنبه از تفاوت فرهنگ ها را نشان می که در برخی فرهنگ‌ها میل محسوسی به آزادی انتخاب، و هویت فردی هست و در برخی دیگر گرایش بیشتر به پیروی از نظم و روح اطاعت و احترام به سنت است. البته شوارت خودگردانی فردی را به دو شکل تقسیم می کنند. یک، اقلانی، مانند حس کنجکاوی، شخصی و شرح صدر و ذهن باز و انتخاب اقلانی و غیره دو، عاطفی مانند میل به لذت و سبک زندگی و آزادی های فردی. بدین ترتیب از این پیوستار سه تیپ شخصیت فرهنگی در میآورد. در مهور دوم نیز، دو تیپ دیگر فرهنگ تعریف می شود. فرهنگ برابری که در آن حقوق یکسان و فرصتهای برابر برای همه اهمیت دارد و در مقایسه با آن فرهنگی که میل به اقتدار دارد و فروتنی یک ارزش به حساب می آید سرانجام بنا به محور سوم نیز تفاوت فرهنگ ها به این صورت است که در برخی فهمیدن طبیعت و فهمیدن مردمان و ستایش و صلح و وحدت اهمیت پیدا میکند و این به عنصر نزدیک نزدیکتر است برعکس در برخی فرهنگ ها جاه طلبی و میل به تغییر رواج دارد شوارتز، کوشید، با همان فرض تقلیل گرایی برای مناطق جهان نخشه فرهنگی به دست دهد. به نظر او در کشورهای انگلیسی زبان، حس برتری و خودگردانی فردی محسوس تر است. در اروپای غربی، ترکیبی از برابری خواهی و خودگردانی فردی اقلانی فراوانی دارد. به سمت اروپای شرقی و مرکزی و بالتیک که می رویم، فرهنگی هماهنگی بیشتر به چشم می در جوامع مسلمان و خاور میانه و آفریقا روح ادغام فرد در گروه قلبه دارد و انصراف بارز در فرهنگ کنفوسیوسی سلسله مراتب است. آسیای جنوبی و جنوب شرقی در منطقه میانی ادغام فرد در گروه با سلسله مراتب قرار دارند و اروپای شرقی و آمریکای لاتین در منطقه ای تر قرار گرفتند. شوارتز با این مقیاس ها و مبنای اندازگیری های میدانی حتی اطلاسی نیز برای 76 گروه ملیتی بر مبنای جهدگیری های ارزشی هفتگانه خود تهیه کرد. در قسمتی از نقشه فرهنگی شوارت، شاهد ادغامگرایی فرد در گروه به بیشترین مقدار، یعنی 98 صدوم هستیم که کشورهایی مثل سنگال، یمن و نیجریه قرار دارند. کامرون مصر و اتیوپی هم در نزدیکی های این منطقه هستند. در مقابل آن یعنی سمت دیگر نقشه بیشترین آنصرور فرهنگی فرد به چشم می‌خورد. به مقدار 92صدم خودگردانی فردی عاطفی و 93صدم خودگردانی فردی اقلانی. نزدیکترین کشورها به منطقه خودگردانی فردی عاطفی انگلستان، ایرلند، نیوزلند بخش انگلیسی زبان کانادا و استرالیا است. که کشورهای منطقه خودگردانی فردی اقلانی فرانسه، هلند، آلمان شرقی و بخش فرانسه زبان کانادا است. اتریش و پرتغال نیز به این منطقه نزدیک‌ترند. در مجاورت منطقه فردگرایی در اطلس شوارتس، ناحیه‌ای هست که در او حس برتری به مقدار 88 صدوم نیز میرسد و کشورهایی مثل آمریکا یهودیان اسرائیل یعنی ملت دولت مطبوع شووارارت و ژاپن در آن به چشم میخورند. در مقابل آن مقدار برابری خواهی به 500صد میرسد و متعلق به کشورهای مانند فنلاند، نروژ، اسپانیا و بخش فرانسه زبان سوئیس است. کشورهای نیز در منطقه میان فردگرایی اقلانی و میل به برابری دیده می شوند. مانند سوئد، آلمان غربی، بلژیک و دانمارک در قسمت دیگری از اطلس شوارتس فرهنگ همنوایی به مقدار 7900 میرسد و در اطراف آن ملت‌هایی مثل اسلوونی، چک و مجار هستند و قدری پیرامونیتر نیز کشورهای متعدد دیگر در سمت مقابل آن نیز با میزان 8700 فرهنگ سلسله مراتبی کشورهایی مانند هند، تایلند و کره جنوبی قرار دارند. ایران در نقشه فرهنگی شوارتز در منطقه میان فرهنگ ادغام فرد در گروه و سلسله مراتب دیده می‌شود ولی این ادعا به بررسی بیشتر به دور از پیشفرض‌ها و خصوصاً با توجه به تحولات در زیست جهان ایرانی نیاز دارد